افسونه افسانه به نام خدا سلام افسانه ها اگرچه واقعی نیستند اما برامده از اندیشه هایی که سراسر حکمت و دانایی به همین دلیلم در هر افسانه درس و اندرزی برای خانندگان و شنوندگان نهفته است و بازم به همین دلیلی که وقتی افثانه ای رو میخونیم یا میشنویم راحتی میتونیم با فضای داستانی اون و با شخصیتهای اون ارتباط برقرار کنیم افسانه ها در میان همه ملت ها و اقوام رواج دارند هرچه اون ملت یا قوم پیشینه تاریخی و ادبی طولانی تری داشته باشه افسانه های بیشتر و نقصتری هم داره. در برنامه امشب افسون افسانه میخوایم سفر کنیم به کشور مکزیک و با یکی از افسانه های این سرزمین آشنا بشیم. کشور مکزیک تاریخ کوهنی داره که نخستین نشانه های اون به پنج هزار سال پیش از میلاد برمیگرده مردم بومی مکزیک سرخپوستانی بودن که در طول تاریخ امپراتوری مهمی رو تشکیل دادن بی کشوری با چنین پیشینه تاریخی میتونه روایتگر افسانه ها و قصه های ماندگاری در حوزه ادبیات باشه یکی از این افسانه ها افسانه زن گریان، که داستان قمنگیزی داره و از هزار سال پیش در کشورهای آمریکای لاتین سینه به سینه از زبان پدر بزرگها و مادر بزرگها برای نوه ها روایت شده تا به نسلهای امروز رسیده عزیزان اگه همچنان ما رو همراهی می شما رو به شنیدن افسانه زن گریان از کشور مکزیک دعوت می‌کنم. سالها پیش در دهکده کوچکی در کشور مکزیک دختر زیبایی به نام ماریا زندگی می‌کرد که به زیبایی خودش مغرور بود. غرور ماریا به حدی بود که حاضر نمی‌شد به هیچ کدوم از خواستگاراش جواب مثبت بده. همین موضوعم هم باعث نگرانی پدر و مادرش شده امروز برای آن آمده بود پیشم من تو دیگه برای آنو دیدی؟ آخرین باری که دیدمه شف ماه پیش بود تو مراسم ازدواج جورج و نانسی آه باید میدیدیش خیلی با آباحت شده بود برنا قویه کل برازنده <تصفيق> قایی برایان رو می بینم از اینکه پسری مثل اون ندارم دلگیر میشم. <تصفيق> این این چرپیار تو یادت باشه که حسادت کار پسندیده ای نیست <تصفيق> حسادت نیست لورا فکر کنم به حال پدرش خبته میخورم Uh, حالا برایان برای این چی اومده بود دیدنه؟ میتونی حط بزنی؟ حتما اومده بود محصول امسال تو بخره نه اومده بود ماریا رو ازم خواست کنه چی؟ چرا میخندی؟ کجا این حرف خنده داره؟ برایان خواست کاری ماریا؟ نه آردونه نمیفهمم چرا باید به این ماجره بخندی لارا؟ میدونی چی؟ نه. برایان، برایان می‌دونه اگه بره پیش ماریا و ازش کاری کنه چه عقوبتی در انتظارشه. همین همینم اومده پیش تو. براین که من پدر ماریا هستم. آره، اما برایان، من اینکه تو پدر ماریا هستی نمی‌ماده پیشه. برای اینکه از ماریا می‌ترسی، اومد پیشه. با خودش فکرش، شاید تو بتونی ماریا رو راضی کنی که باهات ازدواج کنه. اون وقت به این ماجرای تلخ میخندی؟ مهای خوضای من به قیافه ماریا میخندم وقتی به فهم ام برایان ازش این ماجرا اصلا خندهدار نیست لورم باید افسوس بخوریم به حال دختری که تا این اندازه مغرور رو از خود رازیم حالا اصلا بانیدن ما اومدیم تو جنگل تا از هوای یه روز پاییزی لذت ببریم و یه دل سیر تو جنگل قدم بزنیم بله اما وقتی یاد ماریا و اون همه قرورش میفتم نمیتونم از هیچ هوایی و هیچ جنگلی لذت ببرم به نظرم بهتر این بحث رو تموم کنیم باید به فکر راهی باشیم تا بتونیم ماریا رو راضی کنیم ازدواج کنه به نمیشه ماریا رو راضی به ازدواج کرد تو باش حرف بزن بگو سندش داره میره بالا <تصفيق> فکر میکنی اینا رو بارها بهش نگفتم ماریا مثل خودته یه وقتایی لجباز میشه و یدنده <تصفيق> فکر کنم خودم باید باش حرف بزنم منم فکر میکنم خودت با شرف بزنی بهتره و ممکنه به پیشنهاد ازدواج برایانم جواب مثبت بده آرتور و لورا ساعت‌ها درباره ماریا و قرورش حرف زدند. شب بعد از صرف شام، آرتور پدر ماریا تصمیم گرفت با ماریا حرف بزنه. به همین دلیلم به اتاق ماریا رفت تا با او درباره خاصگاری برایان صحبت کنه. ماریا: بیا تو پدر. میبینم که باز پنجرهی اتاقتو باز کردی و با آسمون خیره شدی. رویاهای قشنگ دست از سرم برنمی‌دارن پدر. نگاه کردن به اون ستاره‌ها و یه وقتای شمردنشون بهترین سرگرمیه منه. رویا و رویه پردازی خوبه دخترم. البته به شرطی که تو رو از زندگی و واقعیت های زندگی دور نکنه. من از واقعیت دور نیستم. هستی. شاید بهتر بهتره چشماتو خوب باز کنی و واقعیت زندگی رو ببینی. منظورتون چیه؟ تو دختر جوانی هستی ماریا زیبا، نافذ، پرهی جان و البته چی؟ مقرور خدای من پدر لطفا بذار حرفامو بزنم دارین من متهم میکنین؟ دارم حقیقتو بهتونگم دختر چرا فکر میکنین من مقرورم؟ همه یه دخترای همسن و سال تو که تو این دهکت زندگی میکنن ازدواج کردن سوفیا و سارا هر کدوم دو تا بچه دارن اما تو اینکه من دلم نمیخواد ازدواج کنم معنیش اینه که مغرورم اینکه تو مدام از خاصکارات ایراد میگیری و اونا رو لایق خودت نمیدونی به خاطر قرورت ماریا. خدای من بگین چی شده پدر برایان امروز اومده بود پیش من تا تو رو از من خاصکاری کنه برایان خدای من مم. برایان به چه جورتی به خودش اجازه دادی که از من خواستگاری کنه میبینی؟ میبینی؟ میبینی در برابر این درخواست چه واکنشی نشون میدی؟ پدر شما که انتظار ندارین من با برایان ازدواج کنم مگه برایان چه ایرادی داره؟ از نظر من برایان جوان خوب و مناسبیه اون میتونه تو رو خوشبخت کنه مخصوصا که حالا تو شهر یه خونه خریده و قرار بعد از ازدواج تو هم به اونجا ببره؟ متاسفم پدر ولی ولی من نمیتونم به زندگی با برایان فکر کنم برای چی؟ به نظر من برایان حتی برای همسری هلن دختر گورکن ده مناسب نیست چه برسه به من؟ اوه. کش میتونستی صدای خودتو بشنوی و بشنوی که با چه غروری این کلماتو عدا میکنی نه من مغرور نیستم پدر من فقط نمیخوام با برایان ازدواج کنم چرا؟ چون چون اونو دوست ندارم چون اون شایستگی همسری منو نداره اون زیباست، تنومنده، پولداره، اصیله آرزوی هر دختری ازدواج ما پسری مثل برایانه ولی منو هر دختری نیستم پدر میدونم ماریا، میدونم. به نظر می حرف زدن با تو بی فایده است فقط امیدوارم به من و مادرتم فکر کنی و خیلی زود و خیلی جدی برای آیندت تصمیم بگیری دت ماریا خواستکارای زیادی داشت و مثل همیشه به پیشنهاد ازدواج اونا پاسخ منفی میداد تا اینکه یه روز ماریا همراه دوستش سوزان به جنگل رفت و در اونجا مرد جوونی رو دید که سوار بر اسب بود و به تاخت میرفت خدای من سوزان اونجا رو ببین ماریا، اون مرد کی نمیدونم تا حالا تو این دهکده ندیده بودم. به نظر از خانواده یه اصیلیه اصیل از و ثروتمند میشه بگی از کجا فهمیدی سروتمنده از اسبش از چکمهاش از غرورش. ببین سوزان داری مثل یک کومانچی سوار کاری من یه جوری حرف میزنی انگار نمیدونم از کومانچی خوشت نمیاد ماریا آره ولی از سوارکاری این مرد جوان خوشم باید برگردیم خونه ماریا ما نمیدونیم این مرد کی او برای چی بده کده ای ما آمده سوزانو که با ما کاری نداره داره تو جنگل سوارکاری میکنه آه. ماریا به نظر من ماریا آه. آه. ماریا چیه سوزان حفظت کجاست؟ چرا آه. با اون سوارکار قریبه زن زدیم تو به حال همچین سبار کاری ندیده بودم خوب نگاه کن سوزان ببین با چه قدرتی و با چه زیرافتی اسب و جلو میبره آره میبینم ولی تو چرا اینقدر به اون خیره شدی؟ اما من اما, اما من به هیچ وجه من به اون خیره نشدم من به اص به اون خیره شدم که چموش و زیباست. ولی تو به اون خیره شدی نه نه من, با... من باید برگردم خونه آه سوزا اینه که خودم ازت خواستم بهتره تو تا هوا تاریک نشده بریم خونه زود باش زود باش هجالی با... باش خیلی خیلی ماریا و سوزان به خونه رفتن، اون شب به درخواست ماریا سوزان پیش ماریا موند این در حالیه که ماریا از نظر روحی وضعیت آشفته و پریشانی داره و سوزانم متوجه این آشفتگی میشه سوزان که دیگه نمیتونست حس درونیشو از ماریا پنهون نگه داره، با ماریا در این باره حرف زد از هم خواستی امشب پیشت بمونم فکر کردم مثل همیشه میخواییم تا خود صبح از همین پنجره به آسمون زول بزنیم و از رویاهامون بگیم ولی به نظر میرسه تو ترجیح میدی ساکت باشی و به سخف اتاقت خیره بشی خدای من ماریا ماریا با منی سوزم مگه غیر از من و تو کس دیگه هم اینجا هست؟ وای خیلی ذهنم به هم ریخته اینو خودمم هم شدم تو دو چیزی میخواستی بگی؟ میخواستم بگم چرا ذهنت اینقدر به هم ریخته است نمیدونم نمیدونم <تصفح> <تصفح> ولی من میدونم چرا؟ اینکه چرا حواست به منو حرفایی که میزنم نیست چرا؟ نگو به اون مرد جوان سوار کار فکر نمی کنی که باور نمی ای آی سوسو تو چطور فهمیدی؟ <windows> فهمیدنش نیاز به هوش زیادی نداره به من بگو چرا نمیتونم فراموشش کنم آها شاید چون آشق آه <مب roasted kızksom sins> <laughs> دست بردار to <dois> اشق ماریا هرگز عاشق نمیشه ولی وقتی انقدر پریشونی ها حواظ پرت منیش اینه که عاشق شدی حواسم بود که نهارم نخوردی شامم فقط یه قاشق خوردی پدر و مادرتان متوجه شدن حال نیستی اینا یعنی چی؟ دختر مقرور ده کرده؟ نمیدونم سوزا دو... ولی من میدونم تو عاشق شدی و دیر یا زود باید بری سراغ اون غریبه ای که نمیدونیم کیه و نمیدونیم کجا باید پیداش کنی؟ سوزان؟ بنظرتون برای زندگی کردن به این روست آمدا نمیدونم. فکر میکنی اونم ما رو دیده میدونم؟ به تو مرد جوان ازدواش کردی؟ نمیتونم به تو چرا فکر کنی من باید اون مرد جوانو رو ماریا؟ نمیتونم، نمیتونم اما نستم کجا داریم این سوزان؟ میرم خوب ولی قرار بود امشب پیش من بمونی آآ، ماریا وقتی تو حرف نمیزنی و به دیوار زل زدی دلیلی نداره اینجا بمونم باشه باشه باشه قهر نکن بیا بیا اینجا بشیم با هم حرف بزنیم درباره اون مرد جوان نه درباره این همه ستانه ای که تو آسمونه <تصفيق> راست میگی ماریا به نظرت. کدوم یکی ستاره منه اول تو بگو کدومشون ستاره منه من من فکر میکنم اونی که از همه پرنور و نزدیک ماهه ستاره نه نه نه نه نه اون ستاره منه بله تازه من هر شب باهاش حرف میزنم سوزان به خوبی متوجه شده بود که ماریا به اون مرد غریبه علاقه‌مند شده. ماریا اگرچه با قرورش سعی در پنهان کردن این علاقه داشت، اما در نهایت تسلیم شد و راز دلش رو پیش سوزان فاش کرد و تصمیم گرفت یه بار دیگه به جنگل بره، شاید بازم بتونه اون مرد جوان رو ببینه. به همین دلیل همراه سوزان راهی جنگل شد. فسرنه یسوزم من کنار تو هم ماریا نگران چی هستی؟ هیچی؟ <تصفح> ماریا چرا دست ساده زرده؟ نمیدونم این ساده چیه؟ نمیدونم به نظر میرسه یه نفر داره ساز میزنه باید بریم جورتر <تصفح> ماریا مارونچر برو فکر کنم مطمئنی؟ آره پنکر برای یه لحظه دیدمش آره آره خودشه بایی سوزی؟ بلا چی کار کنی؟ خب ما ما میریم با اون حرف نزنیم همین؟ مطمئنی؟ آره آره مصنی. آره, آره. یاشتو یه ساده هست خب خب باشه باشه پس چند تا نفس عمیق بگشم و بریم جمه آه. نفس عمیق آه. آه. یه بار دیگه آه. باشه ببیارم س... سلام آه. خدایی من این دوشوزایی جوون اینجا چی کنم؟ سلام هم دخترا. من یه چند روزی است که به این دهکته اومده من من ماریا منم سوزانیم بس <تصحيح> میخوام که خدا هم نکرد من پیترم عاشق از سواری گیتار میزنم اهل سفرم و دلم میخواد با اسبم تمام دنیا رو بگرد آه. <تصحيح> آه. <تصحيح> چرا نمیشینیم؟ نشستن روی برگای خوشک این جنگل واقعا لذت دار بلی باشه, میان. باشه میان تا براتون گیتار بزنم دوشی ما، ما. <تصفيق> باشه،, باشه،, باشه. <تصفيق> ماریا و سوزان ساعتها پیش پیتر نشستند و با هم حرف زدند تا اینکه بعد از مدتها پیتر هم به ماریا علاقه‌مند شد و به خواستگاری ماریا رفت ماریا به پیشنهاد ازدواج پیتر پاسخ مثبت داد و چند روز بعد هم با هم ازدواج کردند اونا زندگیشون رو به خوبی شروع کردند و خاطرات خوبی با هم داشتند و صاحب دو فرزند شدند حالا لو پسرشون ده ساله است و دخترشون لوسی هشت ساله اما پیتر دیگه اون پیتری نیست که ماریا انتظارشو داشت ماریا عزیزم چیزی شده؟ نه نه, نه. من خوبم عزیزم هیچ دختری تو حالا نتونسته به مادرش دروغ بگه که تو دومیش باشی دروغ؟ دروغ چرا؟ چون دارم میبینم که حالت خوب نیست به هم ریخته ای انگار انگار داری یه چیزی رو از من و پدرت پنهان میخوانی؟ وای مامان نه من فقط منتظرم پیتر بیاد تا با هم شام بخوریم. پدرت داره با لوسی و لوو بازی میکنه ولی اونم خوب فهمیده که تو این خونه خیلی چیزا عادی نیست چی داری میگی مامان؟ ببینم تو و پیتر با هم مشکلی داری؟ چرا باید با هم مشکل داشته باشیم؟ چون فقط یه زن میتونه به تو دل یه زن دیگه چی میگذره خدایی من نه مامان خواهش میکنم. این کار چیزی رو عوض نمیکنه ماریا حرف بزن من مادرتم بگو چی تو دلت میگذره خب خب پیتر چند وقتی که عوض شده مامان عوض شده معنیش اینه که دیگه عاشقت نیست شاید شاید از اولشم پیتر هیچ وقت عاشقم نبود اگه شگفت نبود چرا باهاش ازدواج کردی چون چون من شرم بود خدای من تو ملامتم نکن مامان <تصفح> <تصفح> میدونم ملامت کردن فایده نداره خب حالا میخوای چیکار کنی نمیدونم چند وقتی که پیتر خونه نایمده؟ امروز صبح که از خونه بیرون رفت هنوز برنگشته البته البته چند وقتی که کمتر میاد خونه بیشتر وقتش بیرون از خونه میزره نکنه نکنه بهت خیانت کرده چی داره میگی مامان؟ محال پیتر به من خیانت کنه دلیل دیگه ای برای دوریه یه مرد از همسر و بچهاش نمیبینم ماریا وای خدایه خدای من ها. تو چرا تو این مدت باش حرف نزدی؟ باش حرف زدم پیتر میگه دلش میخواد دوباره مثل قبل به طبیعت برگرده میگه دوست داره تو جنگل زندگی کنه عصب سواری کنه آه. امیدوارم موضوع فقط همین باشه معذرت میخوام بابا الان میز شما آماده میکنم ماها گذشت حالا دیگه پیتر هفته ها به خونه نمیاد و ماریا و بچه ها در تنهایی و اندوه به زندگی ادامه میدن ماریا دختر مقرور دهکده حالا تبدیل به زنی افسرده و دلتنگ شده بود که شب و روزشو با گریه میگذروند مدت زیادی از پیتر خبری نبود تا اینکه یه روز سرزده به خونه اومد بیا لسی. بیاین توپ آزما مگی بابا توپ منه بدشت رو من توپ لوسیه اگه نا لوسی توپ بگی لوسی بابا بگی لوسیه بنا اگه با مندازلوسی حالا آنواتانه یک، دو، سه پیتر، پیتر ها باید با هم حرف بزنی نه ماریا، بذار برای یه روز دیگه، ربنات فایید میدونم یه روز دیگه تو تونی خونه باشی تو عصبانی هستی عزیزم بهتر وقتی حالت خوب شد با هم حرف بزنیم خواهش میکنم با من بیا پیسی باید باید حرف بزنم، خیلی جدی خیلی خواباچه ها، بچه برید تو اتاقتون بازی کنید بابا خیلی زود میاد پیشتون باده باده خب پیتر ام. من از این وز خسته شدم کدوم از این که میری و ماها تو این خونه پیدا نمیشه وقتی هم که میای فقط با بچه ها بازی میکنی برای اینکه من دلم برای بچه ها تنگ میشه ماریا پس من چی؟ چرا هیچ وقت دلت برای من تنگ نمیشه؟ چرا به من توجه نمی کنی پیتر؟ من یه پدرم و یه همسر چیه؟ نکنه دیگه منو دوست نداری حرف بزن پیتر خواهش میکنم به من بگو تو دلت چی میگذره؟ خب خب حق با تو یاره چی حق با منه؟ اینکه اینکه دیگه دوستت ندارم ماریا چی چی داری میگی؟ خودت اصدار کردی با هم حرف بزنی آره آره ولی ولی نه اینکه که تو چه نگاه کنی و به تو انتظار داری به دروغ بگم ولی ولی چرا چرا چی شده که از من و این خونه دل سرد شدی پیتر؟ شاید از اولش ازدواج من و تو اشتباه بودی باورم نمیشه باورم نمیشه این تویی که این حرف رو میزنید کسی ممکنه تو زندگیش اشتباه کنه ماریا من اعتراف میکنم کنم که اشتباه کردم ازدواج من و تو یه اشتباه بزرگ بودی چرا؟ چرا فکر میکنی ازدواج ما اشتباه بود منو تو هم دیگر رو دوست داشتیم و همین باید شد با هم ازدواج کنیم وقتی من و تو با هم ازدواج کردیم من کم سن و سال بودم تجربه امروز نداشتم چی تو سرت پیتر مطمئنی تعمال شدیدنشو داری؟ آره آره من من هنوزم ماریا یه مغرور رده باشه خودت خاصی ماریا یه مغرور رده به نظر من بهتره چه زودتر رس هم جدا بشیم جدا بشیم؟ جدا بشیم خدای من این تویی که داری این حرفو به من میزنی پیتر؟ آره این منم پیتر موریس میشه بگی برای چی باید از هم جدا بشیم؟ برای که من قصد دارم با دختری از طبقه خودم ازدواج کنم کاری که از اول باید انجام میدادم. نه، نه نه تو تو عقل نداری ما کارو بکنی عقل نداری پیتر <تصحنت> با تصفم عزیزم من خیلی وقت این تصمیم مگرفیم الان هم حد خیلی زود برای انجام و راست مطلق میدنت میاد نه نه پیتر نه تاق نداری با منی کن <تصفح> این <تصفح> انصاف ماه بعد پیتر و ماریا از هم جدا شدند ماریا حالا در خانه متروکی که در دهکده لئو و لوسی زندگی میکنه اون بیشتر از اینکه به بچه ها فکر کنه به پیتر و جدایی از پیتر فکر میکرد. مدتی بعد ماریا با خبر شد که پیتر با دختری از طبقه ثروتمند ازدواج کرده شنیدن این خبر ماریا رو به شدت عصبانی کرد تا اینکه یه روز وقتی داشت با لئو و لوسی کنار رودخونه قدم میزد، کالسکه پیتر و همسرش به اونجا رسید. فکر می‌کنی شبیه چیه این سنگ لوسی؟ لوسی به رودخونه نزدیک نشین بچه‌ها. نه براتون سه اشتر خود بود بابا این خانوم کیه؟ این خانوم همسر منه نانسی چرا دیگه پیش من نمیای بابا؟ من، من خیلی کار دارم لئو من این قول میدم خیلی زود به دیدرتون بیا. چرا الان پیش من همسرم داریم میریم سفر ولی قول میدم خیلی زید برگردم به دیدنتون نمید این مامانو ببینی. نه لیا آمون حالا باید برمان چه بر های بابا بیا بیبریم پیشه مامان بیا بیا لوسی چلو بابا قد زود ره مامان چرا نایمدی پیشه بابا مامان چه مامانتون خوبه باید از اینجا بریم بچه ها باید از اینجا بریم ماما یواش درستم درستم درستم ماما درستم ماما داریش به که با زنش میاد به این درستم ماما ماما تو دیگه به من سلامم نمیپوری نشورت میدم پید نشورتی میدم ماما داری مارو کجا میبری؟ داری میری سمت رودخونه؟ انوز من رو نشنادی به من میگن ماریا. بایش به جایی رسیده که زنشون میاره جایی که من دارم زندگی میکنم. کنم من دارم بلا دیستم ماما آه. من دارم غرف ماریا از دیدن پیتر و همسر جدیدش انقدر عصبانی بود که متوجه نشد داره چه کار میکنه همون روز لئو و لوسی در رودخانه غرق شدند و ماریا هم نیمه جان به گوشه ای افتاد چند ساعت بعد ماریا به هوش اومد و خودشو در دل شب یک و تنها دید آخ, آخ، لوسی، لوسی، خجایی، خجایی، بچی ها لوه عزیزم، لوسی جا، لو، آخ همون چرا تونی که من، من اینجا چی کار میکنم، لو لوسی، لیو، لوسی، تو چی لیو رو می من بالاتر نیستم لیو لیو ليو آ ليونالدو سي کجا کجا من اینجا اینجا. شما شما کجا اين فاجا خواهش میکن. جواب بلی. جواب کجا صدای اون شب مسافری برای اهل دهکده خبر برد که زن جوانی در هاشی رودخانه از دنیا رفته اهالی دهکده به طرف رودخانه رفتن و پیکر بیجان ماریا را دیدند که با انواج رودخانه به ساحل آورده شده بود شب بعد از مرگ ماریا اهالی ده صداهای عجیبی از سمت رودخانه شنیدند، صداهایی که شبیه به زوزه باد نبود صدای زن گریانی بود که با زجه و ناله بچه هاشو صدا می زد نهو لوسی ولی دوستان اینم از افثانه زن گریان افسانه ای از کشور مکزیک و در اون پیام حکیمانه‌ای وجود داره اینکه غرور میتونه فرصت‌های خوبی رو از ما بگیره و ما و زندگیمونو به سمت بیراهه ببره زانی گریان تنظیم برای رادیو سهیلا خدا دادی. راوی فریبا متخصص بازیگران رازیه بومی احمد گنجی شهین دخت نجفزاده محروخ افزلی محمد رضا قلمبور، عزیز محمدی نگین خاج کارگردان بهرام سروری نژاد افکتور نازنین حسن‌پور صدابردار حیدر صفدری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی هم. افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانی دیگر بدرو.